فصل چهارم در انجام اقدامات پیش پا افتاده ماهر شوید. خوردن روزانه یک عدد سیب شما را از رفتن نزد پزشک بی نیاز می کند. بنجامین فرانکلین ساعت شش نیم صبح به فرودگاه فنیکس رسیدم تا ساعت پرواز زمان زیادی مانده بود بنابراین در اطراف گشتی زدم تا جایی را برای واکسیناسیون زدن کفشایم پیدا کنم. فرودگاه تقریبا خالی بود. پس از مدت کوتاهی یک دکه واکزنی پیدا کردم. خانم میانساری در آن دکه نشسته بود و کتاب میخواند. همانطور که به دکهش نزدیک میشدم لبخندی زد و به گرمی به من خوش آمد گفت. پرسید که آیا میخواهم که را واکس بزنم گفتم بله از جایش بلند شد، کتابش را کنار گذاشت و با دقت گوشی صفحهای را که میخوااند تا کرد. سپس ابزار کارش را برداشت و با خوشرویی من را به طرف صندلی هدایت کرد. همانطور که مشغول واک زدن کفشم بود، شروع به صحبت کردیم. او گفت پنج سال است که همانجا مشغول واک زدن کفشای مردم است. وقتی که تازه کارش را شروع کرده بود، دختر نوجوانش سال اول دبیرستان بود. حالا دخترش یک تشویق کننده ماهر دبیرستان است. او اینها را با افتخار تعریف می‌کرد. در حقیقت دخترش در مسابقه تشویق کنندگان دبیرستان برنده شده بود و امیدوار بود که تابستان آینده به اردوگاه تشویق کنندگان در دالاس برود. او به آرامی رازش را با من در میان گذاشت. نمیدونم برای تأمین پول مورد نیاز واسه خریدن یونیفرم و بلیت هواپیمای اون باید چیکار کنم. چه برسه به شهری اردوگاه. دکه او دقیقا کنار درب ورودی بخش خدمات فرودگاه بود و بسیاری از تأسیسات چیها و چیها از آنجا رفت و آمد میکردند. همه آنها هنگام عبور از کنار دکه با او احوالپرسی پرسی میکردند و کمی از خبرهای شخصیشان را بازن واکسی که همه آنها را به اسم می شناخت در میان میگذاشتند. کاملا مشخص بود که با همه آنها دوست بود در همان چند دقیقه ای که کنارش نشسته بودم چیزهای زیادی درباره او و زندگیش فهمیدم. او آدم خونگرم و خوش زبانی بود، سخت کوش و پرتلاش بود و کاملا مشخص بود که از کارش لذت می برد. همانطور که آنجا نشسته بودم و از گفتگو با آن زن واکسی لذت می‌بردم، نمی‌توانستم به این موضوع فکر نکنم که چه می‌شد اگر متوجه عنوان کتابش شدم. یک رمان عاشقانه مشهور بود از آن کتاب‌هایی که مردم همراه خودشان دارند تا در اوقات خسته کننده شغلی وقتشان را با آن سفری کنند یا به طور غیر مستقیم در زندگی خیالی شخص دیگری زندگی کنند. تعدادی از آن نوع کتاب‌ها در قفسه‌ای در گوشه دکه‌اش قرار داشت. معلوم بود که اشتهای خوبی برای مطالعه کردن دارد. چه شد اگر در این پنج سال به جای قرق شدن در این کتاب فراموش شدنی در پانزده یا 20 دقیقه فاصله بین مراجعه مشتریان وقتش را صرف خواندن کتاب می میکرد که واقعا تأثیرگذار گذار متحول کننده بودند. چه شد اگر آن دسته ی کوچک کتابهایش شامل کتابهایی مانند بیاندیشید و ثروتمند شوید از ناپل هفت عادت مردمان موثر از استفان کاوی یا شادی حقیقی از مارتین سلیگمن بود اگر پنج سال پیش فقط همین موضوع کوچک و ساده را تغییر میداد امروز زندگیش چگونه بود؟ آیا هنوز هم واکس میزد و منتظر انعام بود؟ یا دکه های واکس زنی زنجیره را اداره می کرد لطفا توجه کنید که من درباره درآمد پایین یا شغل های سادهق ارزشی نمی کنم. افرادی را می شناسم که سادهترین شغلها را دارند اما زندگی شاد و روابطی پربار دارند. از سوی دیگر، افراد ثروتمند بسیاری را می شناسم که به شدت ناراضی و غمگین هستند. از رمان‌های پسند نیز انتقاد نمی‌کنم، اما کاملا مشخص بود که این خانم دختر کوچکش را بیش از هر چیز دیگری دوست داشت و برایش دردناک بود که نمی‌توانست همه چیزهایی را که دخترش می‌خواست و سزاوارش بود برایش مهیا کند. کاملا مشخص بود که او شخصیت استعدادها و مهارت‌های لازم برای این کار را دارد چه بسا خیلی بیشتر، اما در این میان مشکلی وجود داشت. آیا کار دیگری هست که به سادگی مطالعه روزانه ده صفحه از یک کتاب باشد؟ آیا چیزی چونین کوچک و به ظاهر بی اهمیت زندگی شخصی را در طول زمان به یک مسیر کاملا متفاوت ببرد؟ بله؟ کاملا میتواند می‌دانستم که این موضوع حقیقت دارد این را می‌دانستم زیرا دیده بودم که مطالعه روزانه ده صفحه از یک کتاب خوب چه تفاوتهایی را در زندگی خودم و بسیاری از اشخاص دیگر ایجاد کرده است با وجود این جهان پر از افرادی مانند این خانم واکسی دوست داشتنی است افرادی با آرزوها و رؤیاهای شخصیشان که با وجود شخصیتهای شگفتانگیز و داشتن همه خصوصیات و توانایی‌های ذاتی لازم برای تحقق رؤیایشان، جهت حرکتشان به است که آنها را به جایی که امیدوارند برسند، نمی رساند. افرادی که از قابلیتهای لازم برای رسیدن به اهدافشان برخوردار هستند. همانطور که دوست جدیدم مشغول برغانداختن کفشم بود، او را به همراه دختر هیجان در مسیرشان به سوی اردوگاه تشویق کنندگان تصور کردم. سفری که تقریباً مطمئن بودم در زندگی واقعی این زن دوست داشتنی رخ نخواهد داد. برای لحظه ای، با تصور اینکه چه اتفاقی ممکن بود رخ دهد بسیار متأثر و اندوهگین شدم. آن روز در هواپیما، شروع به نوشتن این کتاب کردم. پنج درصد برتر چه کار متفاوتی انجام می‌دهند؟ چند نفر را می‌شناسید که به نظر شما افراد موفقی هستند؟ منظورم صرفاً موفقیت مالی نیست، اگرچه این مورد قطعاً یکی از جنبه‌های موفقیت به شمار می‌رود. منظورم موفقیت در همه جنبه‌های زندگیشان است. افرادی که سالم و سرزنده هستند، دوستان خوب بسیار زیادی دارند، سرشار از انرژی هستند، همیشه در حال یادگیری چیزهای جدیدند و زندگی برایشان هیجان انگیز است. منظورم موفقیت به گونه‌ای است که گویا زندگی کاملاً بر وفق مرادشان است. شما دقیقاً میدانید درباره چه کسی صحبت می کنم. آن شخصی که لبخند را به لبهای شما میآورد و فوراً با او احساس راحتی می کنید حتی اگر از او ترسی آمیخته با احترام داشته باشید شخصی که واقعا مجذوب زندگی است و به نحوی این احساس را در شما به وجود میآورد که هنگام حضورش احساس بهتری در مورد خودتان داشته باشید افرادی که به نظر میرسد نفسشان سرشار از موفقیت است و با نفسهایشان فضای اطراف را لبریز از موفقیت میکنند البته نه اینکه آنها هیچ مشکلی ندارند یا با چالش ها روبرو نمی شوند، یا مانند هر شخص دیگری از موانع و سختی ها رنج نمیبرند برند بلکه همیشه از دردسرها و چالش هایی به وجود آمده با موفقیت عبور می کنند به نظر می رسد که همیشه کارها برایشان به خوبی پیش میرود آنها در بازی زندگی جزء برنده ها هستند چند نفر را می شناسید که این طور هستند حدث من این است زیاد نیستند بیایید رو راست باشیم بسیاری از مردم تلاش می کنند تا فقط سرهایشان را بالای آب نگه دارند منظورم فقط از لحاظ مالی نیست بسیاری از مردم فقط تلاش می‌کنند تا هرچه بیشتر در بدهی فرو نروند، سلامتیشان را در وضعیت خوبی نگه دارند، زندگی شلوغشان را بدون خرد شدن در زیر استرس و فشار زیاد مدیریت و کنترل کنند و ها و روابطشان را به سختی در مقابل اتفاقات حفظ کنند. اغلب اوقات زندگی مانند مسابقه است که در آن همواره خط پایان را جلوتر میبرند. البته برای همه اینطور نیست. کسانی هستند که به نظر میرسد زندگیشان به خوبی میگذرد اما مطمئناً تعدادشان زیاد نیست. چندین دهه این موضوع را بررسی کردم و حاصل مشاهداتم این است که تقریبا از هر 20 نفر یک نفر تا حد زیادی به اهدافش در زندگی دست نمییابد. اهداف مالی، شغلی، روابط اجتماعی، سلامتی و هر جنبه دیگری که فکرش را بکنید. یک نفر از هر 20 نفر یا حدود 5 درصد که به این معنی است که 95 درصد از افراد یا شکست می‌خورند یا به چیزی کمتر از انتظاراتشان دست پیدا کنند و این سوال را به وجود می‌آورد که تفاوت میان این 5 درصد و آن نود و پنج درصد در چیست این 5 درصد چه کاری انجام می‌دهند که آن نود و پنج درصد انجام نمی‌دهند ابتدا به شما می‌گویم که چه چیزهایی نیست وراثت، تحصیلات، استعداد یا ژنتیک نیست. همچنین شانس، سرنوشت، بخت یا اقبال یا رویارویی آمادگی و فرصت نیست. تقدیر و قسمت نیست و حاصل بسیار خواستن و آرزوی از ته دل نیست. آن پنج درصد بیش از دیگران خواستار موفقیت نیستند آنها برای کسب موفقیت بیشتر از دیگران رؤیاپردازی آرزو دعا و نیایش نمیکنند و بیشتر از دیگران امیدوار به موفقیت نیستند اینطور هم نیست که آنها بیشتر از دیگران سزاوار و شایسته موفقیت باشند همه ما می خواهیم زندگی موفقی داشته باشیم همه ما امید و آرزوی رسیدن به موفقیت داریم اصلا همه ما سزاوار و لایق موفقیت هستیم. اما آن پنج درصد به موفقیت دست می و آن و پنج درصد از کسب موفقیت باز میمانند. چرا ؟ فقط یک تفاوت بین آنها وجود دارد و آن برتری خفیف است. همه آن پنج درصد از قدرت برتری خفیف و اینکه چگونه به نفع یا علیه آنها عمل می کند آگاه هستند. البته ممکن است برای توصیف آن از عبارت برتری خفیف استفاده نکنند حتی ممکن است ندانند که بر اساس این فلسفه عمل می کنند اما دقیقا همین است اجازه دهید مثالی بزنم. پسری نوجوان به نام استیو در اولین روز دبیرستان استیو به همراه سایر دانش آموزان وارد سالن کنفرانس شد. در حالی که روی یکی از سندلی های مرکزی سالن نشسته بود و به صحنه نمایش کاملا روشن نگاه میکرد، ناگهان آرزویی در ذهنش شکل گرفت. دلش میخواست مجری شود. اما مشکلی وجود داشت. او نمیتوانست آواز بخواند، حرکات موزون انجام دهد و نمایش اجرا کند. حالا که به آن روزها فکر میکند میگوید خوشبختانه پشتکار و مداومت بزرگترین و بهترین جایگزین برای استعداد است علیرغم رغم این واقعیت که به نظر می رسید استیو مهارت یا استعداد خاصی برای نمایش و اجرا نداشته باشد اما با جدیت تصمیم گرفت به هر نحوی شده آن را انجام دهد. ساعت به ساعت و روز به روز، ها و ترفند های تردستی را فرا گرفت. نواختن بانجو را نیز به تنهایی یاد گرفت. تمام مطالبش را روی هر کسی که به او گوش میداد و حتی برخی از آنهایی که نمیخواستند گوش کنند امتحان می کرد. روی مهارت تنزگویی ضعیفش نیز کار کرد تا در مقابل ها دست و پا نباشد او این کار را سالهای متمادی انجام داد حتی با اینکه هیچ نشانه ای حداقل نه در ابتدای کار درباره اینکه به جای میرسد وجود نداشت پانزده سال بعد استیو مارتین بزرگترین مجری استندآپ کمدی در تاریخ شده بود درست است که در ابتدای کار نوجوانی بدون مهارت بود اما او برتری خفیف را داشت که به نفعش عمل میکرد. برتری خفیف همان چیزی است که تلاش های صادقانه، اما ناشیانه استیو نوجوان را به پدیده گیشه ها تبدیل کرد. برتری خفیف نیروی محرکه شگفتانگیز پشت قدرت اثر مرکب است. همان نیرویی است که به سنبل آبی اجازه داد تا سد آبگیر را تسخیر کند، به قورباغه با پشتکار اجازه داد تا زندگیش را نجات دهد و سکه یک سنتی پسر مرد ثروتمند را به ده میلیون دلار تبدیل کرد. برتری خفیف مانند نیروی عمل مداوم و مکرر آب است که میتواند حتی سطح سخره ها را به سطحی صاف و سیغلی تبدیل کند. برتری خفیف راه رسیدن به هر چیزی که در جستجویش هستید، هر چیزی که میخواهید در زندگیتان دست آورید یا هر نوع زندگی است که امیدان به دنبالش هستید. این همان تفاوت آن پنج درصد با بقیه مردم است. آنها می دانند چگونه از برتری خفیف استفاده کنند تا به آنچه میخواهند برسند. نه، اجازه دهید کمی این جمله را اصلاح کنم. آنها می‌دانند چگونه از برتری خفیف استفاده کنند تا به آنچه می‌خواهند برسند و این کار را انجام می‌دهند. آنها این کار را انجام می‌دهند و توانایش را به دست می‌آورند. اگر یاد بگیرید که برتری خفیف را درک کنید و به کار ببندید، تضمین می‌کنم که پس از مدتی و احتمالا کمتر از چیزی که تصور می‌کنید، به آرزوهایتان تحقق میبخشید شما بخشی از آن پنج درصد خواهید شد و به موفقیت می رسید. وقتی که می گویم می کنم به معنای واقعی کلمه منظورم این است که اگر شما واقعاً این اصل ساده را در زندگیتان به کار ببندید و پیشرفت مهم و عمدهی را مشاهده نکنید ما تمام پولی را که برای خرید این کتاب پرداخته اید به شما برمیگردانیم. گردانیم. سؤال ده میلیون دلاری. شگفت انگیز ترین و جالب ترین بخش داستان استیو مارتین این است که کارهایی که او برای پرورش و گسترش مهارتهایش انجام میداد سخت یا پیچیده نبودند بلکه فقط به تمرین و تکرار نیاز داشتند. در ضمن خیلی هیجان انگیز و مهیج نیز نبودند. اجرای برنامه در مقابل میلیون ها نفر ممکن است ترسناک و حیجان انگیز به نظر برسد اما هنگامی که در یک کافی شاپ تقریبا خالی باشید که هیچ کس توجهی به شما نمی کند و در تلاش باشید تا مطلبی را بگویید که تا به حال سی بار تمرین کرده اید، دیگر نه خیلی ترسناک است، نه هیجانانگیز و نه شادی آور. در حقیقت کارهایی که استیو بایستی برای پرورش و بهبود مهارتهایش انجام میداد اغلب اقداماتی پیش پا افتاده بودند همین موضوع برای موفقیت در هر جنبه‌ای از زندگی صدق می‌کند. از سلامتی گرفته تا ارتباطات، شغل و مسائل مالی. در کتاب همسایه میلیونر، بزرگترین رازی که استنلی و دنکو فاش کردند، این بود که میلیونرهایی که آنها دربارهشان مطالعه کرده بودند، عادت انجام دادن کارهای ساده و کوچک با پولشان را در خودشان نهادینه کرده بودند. داستان هیجان انگیزی میشد اگر آنها اندک پولشان را در یک سهام بی ارزش سرمایه گذاری می کردند که بعد با یک افزایش ناگهانی بازار مالی را غافلگیر می کرد اما نه اینطور نبود اولین قانون از هفت قانون آن کتاب این است که همیشه زیر خط استطاعتتان زندگی کنید چیز هیجان انگیزی در این باره وجود ندارد اینطور نیست اقداماتی صرفا پیش پا افتاده در سایر جنبه زندگی نیز به همین صورت است. کارهایی که آن میلیونرهای عادی برای ایجاد ثروتشان انجام داده بودند، نه پیچیده بود، نه درکشان دشوار بود و نه انجام دادنشان سخت. هیچیک از آنها دانش سطح بالا یا مهارتهای خاص نداشتند. کاری که آن میلیونرها انجام داده بودند، بسیار ساده بود. آنها در انجام دادن اقدامات پیش پا افتاده، مهارت پیدا کرده بودند. همانطور که قبلا گفتم اگر برتری خفیف را به طور مداوم به کار ببندید به جمع آن پنج درصد می پیوندید و می بینید که اهداف و آرزوهایتان شروع به تحقق پیدا کردن می کنند شما با انجام دادن اقدامات پیش پا افتاده و ساده ی روزمره به آن اهداف و رویاها دست پیدا می کنید می دانم که بیش از حد ساده به نظر می رسد اما واقعیت دارد دیده هم که این موضوع بارها و بارها اتفاق افتاده است اگر برتری خفیف را درک کنید و به کار ببندید، زندگیتان سرشار از هزاران اقدام ظاهر ناچیز و کوچکی میشود که همهی آنها واقعا ساده هستند و هیچ کدام پیچیده یا اسرارآمیز نیستند. به عبارت دیگر، شما باید در اقدامات پیش پا افتاده مهارت پیدا کنید و همین اقدامات بانی موفقیت شما خواهند بود. یک چیز واقعا شگفتانگیز دربارهی آن اقدامات وجود دارد. آن اقدامات ساده که به موفقیت منتهی میشوند، نه تنها کارهایی ساده هستند، بلکه انجام دادنشان نیز بسیار ساده است. در واقع، چنان ساده و آسان هستند که هر کسی میتواند آنها را انجام دهد. احتمالا حالا یک سوال ذهنتان را حسابی مشغول کرده است. اگر این کارها خیلی ساده هستند و انجام دادنشان نیز خیلی آسان است، چطور است که فقط پنج درصد از مردم آنها را انجام می دهند؟ در حقیقت چرا همه مردم آنها را انجام نمی دهند؟ جهان امور مالی یکی از بارزترین مکانها برای مشاهده قدرت برتری خفیف در عمل است. همه ما قدرت بهره مرکب را میشناسیم درست است؟ نه، اشتباه است، همه گمان می‌کنند که قدرت بهره مرکب را میشناسند، اما در حقیقت بسیاری از مردم درباره آن آگاهی ندارند اگر از آن آگاه بودند آن را به کار می‌بستند اما به وضوح مشخص است که بسیاری از مردم آن را به کار نمی‌بندند پروفسور سیریل نورثکوت پارکینسون قانونی را ابداع کرد که به قانون پارکینسون مشهور شد این قانون میگوید هر کاری به اندازه زمانی که برای آن تخصیص داده شده است طول می‌کشد. زمانی که این قانون را در دنیای امور مالی شخصی به کار ببندیم، این گونه می‌شود: هر آنچه دارم خرج می‌کنم. در واقع در جهان امروز بیشتر چیزی شبیه به این است: هر آنچه دارم به اضافه کمی بیشتر از آن را خرج می‌کنم. کنار گذاشتن روزانه چند دلار یا پسنداز کردن مبلغ کمی در هفته چقدر سخت است؟ در واقع بسیار آسان است. با این حال، بسیاری از ما این کار را انجام نمی دهیم. ایالات متحده یکی از بالاترین نرخهای درآمد سرانه جهان را دارد و همچنین یکی از پایین ترین نرخهای پسنداز. چرا اینطور است؟ مثلا تغذیه و سلامت را در نظر بگیرید. تغذیه یکی از بهترین مثال است که برتری خفیف در آن کار دارد زیرا خوردن است که همه ما در طول زندگیمان هر روز انجام می‌دهیم و هیچ رمز و رازی درباره تغذیه سالم وجود ندارد با این حال اضافه وزن و چاقی به مشکلی بزرگ و روبه رشد در ایالات متحده تبدیل شده است از هر سه امریکایی دو نفر اضافه وزن دارند و تقریباً از هر سه نفر یک نفر واجد شرایط تعریف چاقی است. در سی سال گذشته چاقی کودکان سه برابر شده است. این خبر جدیدی نیست. آمریکایی‌ها می‌دانند که دو چهار اضافه وزن هستند. در حقیقت ما پول زیادی را صرف خرید کتاب‌های مربوط به تغذیه و برنامه‌های رژیم غذایی می‌کنیم تا با کمک آنها مقداری از آن اضافه وزن مزاحم را از بین ببریم. بیش از سی هزار باشگاه تناسب اندام در ایالات متحده وجود دارد و همه آنها در خدمت آرزوی ملی ما برای کاهش اضافه وزن و رسیدن به تناسب اندام هستند. البته موضوع فقط درباره اضافه وزن یا ظاهر اندام ما نیست. تغذیه یکی از مهمترین فاکتورها در عوامل اصلی مرگ و میر جامعه ما، یعنی بیماری‌های قلبی، سرطان و دیابت است. بیشتر ما به معنای واقعی کلمه گورمان را با دندانهایمان می‌کنیم. همه ما این موضوع را می‌دانیم، اما واضح است که هیچ کاری در این باره انجام نمی‌دهیم. چرا؟ اگر انجام دادن عادتهای برتری خفیف بسیار آسان است و منتهی به موفقیت خارق‌العاده می‌شود، چرا همه افراد آنها را انجام نمی‌دهند؟ این یک سوال ده میلیون دلاری است و چند جواب ساده دارد.